اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على و رسول الله طاهر الطيبين فاضلين المعصومين دار دارنا تعالى على الارضين اللهم اشفنا جميع المشغلين وارحمنا فك يا رب از شد این فصل از مواقع اصول درباره مسئله تنجز که بعد از مرحله فعلیت احکام و به اصطلاح انجام میشه. از شد در مرحله تنجز این تابع وجود صورتی از تکلیف یا موضوع و موضوع هر رو با هم در ذهن. فعلا بحث ما در اون صورت است که از تکلیف بیدان می شود موضوع رو در داره از شد تا اینجا به کلمات مردم شیخ چون ایشان متحدث شدن به این ترتیب که پس اوزن نوشک و بعد بعد مجاری و حصول رو در شد چهار داردن به شری که چند منطقه گذشت ما ترد رو عوض کردیم به عنوان تنجز و حقیقت تنجز به خلاف این راه روش منقوم شیخ برست و اصول که این تنجز که وجود صورتی از تکریب در ذهن باشه این دارای بررسی و بحث از جهات مختلفه ما الان به اطلاق بحوان مقدمه و اتباع اند شیخ متعرض این مواقع شدیم که منقوم شیخ مقدمتن و تمیدن ترمودن که بحث منجر شد به بحث اصول عملیه و استسخاب و حقیقت اصول عملیه لطفیر به نحوه اجمال که اینشالله تفسیری این بحث ها رو اینشالله تو بحث اصول عملیه خواهد آن چون بحث ادراک انتباعی و ادراک افداعی پیش آمد و صحبت هایی شد و است یک قسمت از بحث ابهام داشته باشه و این بحث هم از طرف کاملا در اصول تأثیر گذاره حقیقت و اصول و امارات من یه طریقی رو اینجا عرض می کنم به منصبت استطحاب و یک نکاتی موضوعی نکات تاریخی و علمی که آیا مثلا استطحاب جز اصول یا جز اماراته و محیار چیه؟ بحث تعبط که نیست کنشتان پران آقا فرمدنی ز اصول اون آقایتی جز اماراته محیاره برای این که بدانیم خود ما وجدانی و درک وجدانی بکنیم که محیاره در این جز اصول باشه جز امارات باشه چیه چه میادی هست برای توضیح مطلب ما اول اون وجدانیات و خودون رو یک اوگوری مروری بکنیم ببینیم چه اوزایی هست ببین شما فرصه دیروز با زید در یا در منزل یا در منزل خودش باش صحبت کردیم خواهی نخواهی این صورت در ذهن شما هست که زند زید به لفظی خودی توییدی سیانه با صحبت کردیم زنده بودنش پد میشه امروز او رو ندیدیم خوب دفت رو کنید امروز هم اگر شما بکرستن میگیم برد زهد هستش دیروز هم بودید به وجدانتونم که مراجعه بکنید همون صورتی رو که دیروز از حیات زهد در ذهنتون بود همون صورت هست دیگه خوب. اون صورتی رو که دیروز در وقت صحبت یا زهد رو نفسی دیدیم و صورتی در ذهن شما پیدا شد که زهد هست موجود هست همون صورت هم امروز هست خواهی نخواهی این صورت امروز با صورت دیروز یک داره تمام بحث اینجاست ببینید این که این صورت دیروز چه بود و صورت امروز چیه حقیقت این دو صورت چیه تا این بحث بحث امروز روانشناسی هم هست چون بحث ادراک و انتباه صورت و مراکزی که در مرد هستن که این صورت ها رو می و درش کار میکنن چی کاریم این در بحثه روانشناسی بحثه تشریح بدن بحثه آناتومی و حال وجود داره تو بحثه های فلسفی قدیم همون تحت مسئله ادراک که با دماغا و مترخیل هر در یک جایی متعرضه حقصان عربه ادراک مثل نموشترک کنیم به واقع موخیال به حصا و فکر اونجا متعرض کنیم ما توی سعی میکنیم سر بحث و از اون زاویه های به اصطباح واقعی روانشناسی یا حالا تصوراتی که فلسطفه قدیم داشت اون بحث نشید چون بیشتر اینجا ما جنبه عملی و جنبه حجت قانونی به نظر ماست نه جنبه‌های های تشریح و روانشناسی و آیا اون بحثی که در فلسطفه قدیم بزن درسته جایی اینا هم هست مشترک داریم نذاریم قبعی خیال کاری اون کاری فیلن ولی ممکنه اصطلاح آدم به کاری برده اما ما الان به وجدانیات خودمون مهم برگردیم و اون مقداری که در متعارف عرف در مسائل قانونی حتی به پدر و پسر بین زن و شوهر بین مولا و برده خودش بین قانونگذار و عامه شهر و مطرحه اون رو الان ما اینجا مطرح میکنیم حالا ممکن در این اصطلاح علمی چیز خاصی باشه در این اصطلاح علمی دیگه مطلب دیگه‌ای باشه تحقیق علمیش یا اصطلاحی باشه بنابراین کلا راهش هست فرق بین معنا مأخوذ و مفهوم رو این واژه می اون صورتی که اطلاقم میزنه نمیاد مثلا معنا اون چیزی که بعد میمونه مفهوم اما اون صورت بقای دومر این بحثه حالا که این اصطلاح درست هست میز و مایه داره این بحثا اینجا خیلی کارایی نداره بحثی که ما در اینجا الان مطرح میکنیم اینه به ویژانیات خودمون که مراجعه میکنیم ما زنده بودن زید رو میبینیم هم دیروز هم امروز دیروز هم میدونیم زید زنده است امروز هم میدونیم دیروز با شما جفت شدیم صحبت کردیم امروز رو ندیدیم اما میدونیم زنده است صحبتی که الان اینجا مطرحه این دوتا ادراک رو چیجور تصویر میکنیم چیجور تصویر میکنیم ت... در بحث های اصولی متاختر شیعه بگیم تحلیلی که من میگم نیست اما نسیدش همین در بحث های شیعه بحث های قدیم هم اهل سنت شیعه نظرم یک تحلیلی در این جهاز سعی انجام بدم با تمازی که شده حالا ممکن این تحلیل از مجموعه کلمات استفاده بشه بگیم سراحتی که من عرض می کنم نیست یک تحلیل اینه که نوع این دو ادرا هیچ فرق نداره. حالا فرض مثلا به اصطلاح فتحی هر دزدی استعماض درک چون دیروز که استعماض دری بودیم، ادراک امروز هم همونه. هیچ فرق نداره. تمام میشیم. ما دیروز این صحبت میکنه امروز هم این صورت داریم. هیچ هر دزد نکنیم. فرقی که میکنه در اثر گذشت زمان، این صورت امروز یک مقدار زیر پیدا میکنه، یک مقدار ابهام پیدا میکنه. حالا اینکه یهو تفسیر بکنیم، بریم بگیم وضوح و ابهام، مثلا دیروز فقط صحبت کردیم این خیلی واضحه. امروز 24 ساعت فاصله شده. این یه کمی ابهام پیدا میکنه چرا؟ چون بذاخر ما به وجدان که برگردن ممکن مرده باشه، میشه مرده. ده. یا بگیم صورت دیروز خیلی سعه داره، خیلی دقیق، اندازه خود واقع. اما صورت امروز یک مقدار زیر داره. خوب دقت یا بگیم صورت دیروز کامل بود صورت امروز قصور داره ناقص یه مقدار آخر صورت یکی فرم نمی کنه دیروز امروز یکی ایشار نمی کنه دیروز که ما باشی صحبت کردم زیر روزم امروز هم امروزم همون ادراکه خوب دقت کردیم؟ خوب دقت رو خود. فقط چیزی که هست صورت دیروز واضح بود صورت امروز یه کمی ابهام داره هر کم بیشتر ابهام بیشتر میشه. سوره دیروز سهه داشت صورت امروز زیغ داره صورت دیروز کامل بود صورت امروز قصور داره نفس داره زیر داره من در مواقع زن دارم در همون دوره سالا در خلال از کردیم با مراجع به شغاز قرآنی خود کلمه زن و حتی شر در اصل نوعه تعرف به معنی زیغ نبوانه غیب تا اینجا باغواد آمده ما مرادون باغوا هستند خب یه بحثی داریم صاحبها رو منع کنیم فرق بین از خیلی واضح نیست استعمال هر دو جای هم دیگه که کتابوا رساله فهمینه ابواد داره الاسمینه وا الله لكن انصافن ابهامی هستی که از جایی در عرب ابهام داره در واقع احتمال له های مختلف باشه اشعاره مختلف بوده جای مختلفه من باید اون بحث هر حال از استعمالات به کلمه زن اینجور انسان درش پیدا میشه که یک نوع در زیر هست قصور هست این هم اللای از النوم این هم اللای اخوز این نظرن لایق یعنی ادراک هایی که آسرن ادراکی که قصور داره ادراکی که دیگه داره شما رو به حق و واقع و صابق و نفس الامر نمیرسونه حالا این زیغ از چه منشهی پیدا میشه در ادراک ما اونی که الان در کتب اصولی ما متعارفه اون درجات ادراک مثل هفتاد درستاد درصد درستاد میگیم زن سد درستاد میگیم ایم اما این معلوم نیست که در سل به لغت عرب و در اصطلاحات قرآنی بیشتر این نظر باشه احتمالا منشأ زیغ و سعه اصول و تمام منشه این دو سا برگرده به مدارک ادراکمون زیربنا قلوها فروت گرهان هست برهان به تعبیر قرآن وقتی که ترجمه شد منطقه یولانی به جای مثلا برهان حجت داشتن در قران برهان هست حجت هم هست به جای حجت سلطان هم هست اینهی الله از ماسم ما هان کن و ما هم الله و آمین سلطان سلطانم با حجر به به سیطره ای ایسان تأدیر براهان هم در قرآن آمده اندن لا لایق نیموند حقه شیعا مراز ظاهرا در زن در اون اصطلاح در اصطلاح قرآنی بیشتر نظر روی مدرک ادراکه نه خود ادراک نه تقسیم بندی ادراک یعنی شما بینید این ادراک شما از کجا آمد حالا نه وجد نه آباء نه علهاذ و نه عصاره مختطون مختفون ابراز عصاری بارکه خب اولو کان آباء هم داره علمونه من در هر چیه آد ادراک که تو شما می‌نیست در جامعه این در جامعه خب این بانوانیک عرض جاسون خوبی از کجا آمد این 50 سال 100 سال 20 سال 50 سال پدرامش شما آوردن هیچ زیر زناي علمی نداره. حال ها تو برها نکنین کن اگر بناز انسان سلطه بر حق داشته باشه بر واقع داشته باشه باید یک یک نوع برهان باش باشه. پس دقت بکن این یک اصولاً یک ارزش قرها است که ادراکاتی کارفی که زیر داره، اون سوور در نفس انسانی نیاز زیر داره و حصور داره و اعبم داره سعی شده که این سوور در داشته باشه اعلمان در دانشگاه میان همینه تمام هم بحث، دانشجو امروز اینه که صوبر رو واضح بکنن هرچی تا جایی میتونن مثلا یه گفت سوگو خبره عرف سوگو برای شما 10 درصد هم گفت مثلا ما ایشون 20 درصد فلان یکی گفت چه سی درصد اختفا نمیکنه هی سعی میکنن مطلب رو موشکافی کـنه خودش رو مستقیما باش برخورد بکنن این یکی هدف اساسی که در قرآن هم آمده. با ادراکاتی که دارای یک نهی برخورد بشه. گاهی این اومده کار برده شده نه برنای یقین یعنی. یعنی اعتباد درست دردن دردن دردن. بله اعتباد نه، بله اعتباد ادراک درست ادراک ویژانی لکن ممکنه خصور اون ادراک درست میدونه اما باز نفسش آرامش نداره نهانده انده انده بره یک خصوری چون زن هست هر سبرش بداخلی یک جشت یک جشت گیرگاه یک جای ادراک زنی یه گیر داره الان در استلاح ما گیر رو فقط داریم به درجات این نیست خب هم تو. هم تو. هم تو. بازم زنده. چرا؟ چون میگه من یقین دارم اما باز تحقیقا به شنوز وسوسه داره این نیست درجات نیست این ببینید ما اجازه ببینیم. ما اصولا جایی که ابهام که زیر داره میگی زن در مقابلش یمین که ثبات یعنا یعنی ثبات جایی که وضوح داره خوب به بکنه میگیم که در مقابلش ابهام جایی که ایمان ولی نه یقین فقط ایمان آرامش نفس اعضاء و جوارح تسلیمند اون جایی که ایمان متفکر ما از کردیم یکی یقین داریم که این خجیتش چند بار ارز کردیم یکی یقینه یکی علم و که وضوحه یکی هم مسئله ایمان که اسمی نام باشه تومعنینه نفس در مقابل تومعنینه نفس در قرآن ریده لا ریده که داری که کتاب لا ریده که اما من محون الذین آمانو بالله و رسولی ثم لن یرتابو اون ری اون حالت ری ولذا خود به مشهر و به نعصابه فهم المجمعله لا ری فی این ری یعنی اون حجیت و اقلائی یعنی وقتی شما 20 بیس نفر از امام صادر نرکن در مقابل یک سقه نرکن کرده ری بیرسته که اون سقه پیدا می کنی 20 نفر ری بفید فهم المجمعله یا هدفی پس این اصطلاحات رو حفظ بکنید قصور ادراکی نفس ادراکی در مقابل یقینه ری در مقابل ایمانه در مقابل تومعنینه تومعنینه نفس یعنی سکون و آرامش اعضا یعنی یک نهر ادراکی در اون حالا قوه مدرک در قول زهی توی در یک مدرک اصدیه شما حالا اون سلسله عصبی پیدا میشه که این سلول ها آرامش پیدا میکنن سلول ها نه نه به سلول این آرامش که اصطلاحاً در اصطلاح ما تو معنیه به اطمینان می‌شه این یک روانی هم داره ما الان وارد تغییر روانی نمی‌خوایم بشیم این از کجا شروع میشه میرسه اون الان محل بحث ما نیست محل بحث ما برخورد عملی و کاربردی با نه در برد و تحلیلی او از یعنی جوریست که یه انسان با تمام وجودش رو اشتاقی کنه نه یعنی نه پایینتر نگفتن من نگفتم پایینتر گفتم سه تا چیز هست که در نظر عرف اینا هر سه حجت هست در نظر عرف اقلالی یکی وضوع و الان پایی جزبت باشه یکی اطمینان و سکون نمس و یکی هم یعنی نگفتم پایینتر پایینتر بالاتر نگفتم اینا چون شیخ فقط یقین نفس رو آوردن من دو سالگرامن اضافه کرده کردم این کار یعنی اگر یک ادراکی شما داشته باشین که نفستون کاملا دیگه آرامه هیچ ریبی نداره این رو هم اوغلا قبول از البته در حرفه به نظر ما شرطش اینه 90 درصدش مبادی داشته باشه اینو ما با در حرفه شرط می‌ذاریم نگا من اسکینان داشتم خلاص کجایتون داشی کلاقه فرید خودت میچی خود کلاقه فرید 90 درصدش باید شواهد اوغلاوی باشه 10 ده درصدش به از خود انسان برگرده بقید که 90 درصد شواهد اوغلاوی 10 درصدش به شخصیت انسان کلاغپریزن اونم یه یکی نقش نفس می‌دازه پس پدرت مرد چرا دلیل 90 بده؟ ما که پدر این رو قبول نمی‌کنم نه استنادش قبوله نه وجودش قبوله علم و قبوله. نه هر کدوم پس این. تا اینجا بحث روشن بشه برگردیم به مثال خودمون دیروز دیدم زید زنده از صحبت کردم امروز هم از من هم بپرسن میگم زید زنده همون صورت میمونه یه تحلیلی در اینجا هست حرف این دو صورت چیه؟ یک تحلیل از کلم دیگه این صورت در کتاب مربون نایی و دیگران آرکوی و اما نتیجه کلماتشون. یک تحلیل اینه که این هر دو ادراک خلاصاً به لحاظ ادرمانی شدن که یا هم مسائل ادراک در فلسفه قدیمه در, در فلسفه به لحاظ ادراک هر دو فلسفه مال هست مشترکن فرق نمیکنه هر دو ادراک حقیقتاشون یکی ادراک دیروز با امروزه من یکیه فرقشون چیه ادراک دیروز سعه داره ادراک امروز بیخ داره ادراک دیروز که مستقیم بود کامله ادراک امروز من قصور داره ادراک بیروز من کاملا واضح بود ادراک این من ای کمی امهام داره ماهیت هر دو ادراکیه یکی این نصیلش اینه که استصحاب خود از باب اماریت میشه کسی که میگه استثاب امار هست؟ لذا معروف شده الان در کلمه زنانی کسانی که, که میگن یقین به حدوست زننده زن به بقا بینیم؟ یکی یقین به حدوست مسترزم زن این زننده به بقا یعنی میاد میگه اون حدوث و بقا مثل هم یک ش یقینی نیست یک زندگی این اصطلاح منو به کار نبره روشن شد اون کلمات تحلیل شد گفتن هر کسی که فائله که در استصحاب زن به بقا داریم این قائل به اماریته روشن هر کسی که قائل در استصحاب زن به بقا داریم این قائل به اماریته این الان تحلیلش برای شما روشن شد قامنه یعنی میگه هر دو ادراک یکی فرق این دو ادراک دیوحی یقینی بود امروزی ذهنیه امروزی قامل لمس نبود قامل لمس امروزی دیروزی این فرنشینه دیروزی قابل ختچه نبود با سوال دیدی که مرده است مثلا با سوال ببین امروزی قابل ختچه است و اینی که در کلمات مشهور شاد اصول قدیم استثاب را و الباب اماریت گرفتن همین تفسیر با شاید تفسیر چیه؟ پس یکی ادراکه طریعت هر دو ادراکی یکی یکیش فرقش فقط دو سنف ادراکه. یکیش ابهام داره یکیش ابهام نداره یکیش زیغ داره یکیش زیغ نداره این زیغ بلا یکیش داره الله که در که خودشی که من گفتم <تصفيق> برگشی بعدش بعد قبل از اینکه نشیده بودی خب این حرف بنده اینا میگن نه این دوتای یکی اند فقط خب شما ممکنه بشیم بریم دیشب مورده مورد این میگه اون قصور مال همینه چرا میگین ادراک امروز قصور داره سر قصور اینه پس خوب دقت کرده ای کار هرچه که استثاب آمد باید بدونید یک سر و قصور داره این سر و قصور منشع میشه بهش بگن زن همیشه هر کردم به شما زن همیشه معناش این نیست که ادراک 70%-80% ممکن مثل همون ادراک 90%-100% باشه اما زیربنا شرابی داره اینجا ادراک زیربنا گیر داره امیشه خصوصا ادراکش از بشر استصحاب بله این تصور میگه یکیه نه منشأ خصوصی میگه ممکن نشه مرده وقتی شما باش صحبت میکنید نمیشه کسی شما با واسه مرده با صحبتش نمیشه مرده میگه الان که اینترنت داره نشه زیک مردوم کاری هر کسی با صحبت تو زنده میشه مرده تو خبر آنلاین زیک مردوسه دار با صحبت, با با صحبت, با صحبت این در شما هیچ تزلز اجازه نمیده لغا چون تزرزای ایجاد میکنه اسمش کنه یقین اسمش کنه ایل اسمش کنه قهر اما این بود از تو میپرسن این زنده بگیم تو خبر آموده مورد این تزرزای ایجاد میکنی بدون اینکه که خبرن ببینیم تزرزای ایجاد میکنی چرا؟ چون بگیم احتمال نیشن مورد این احتمال دیشن مورد منشع خصوره خوب دقت بکنیم چون من میخوام یه سریع دیارم تو فهر. اینجا منشأ قصول چی شد؟ شاید ایشموند این میشه منشأ قصول میشه منشه نقص میشه منشه زیر. حالا شما سوال بکنید شما تو فقیل چی رو تبدیل میکنید؟ مثلا این آب نجس بود کر نبود تطریبش کردیم کرد، با آب و تاهر اما کر بوش نگیشیم نسل و داشت نسل و کردگیر پاک شد که کسان میگن استثار میگن سابقا نجیس که حالا نجیس این شما چیه تصویره هم بود تصویرش میگه مست که این کره نبود این صورت یقینی ما بود که این آب این آب خارجی این نجیسه این آب نجیسه این که یقینی ماست این که جای شبه نداره شد. از اون قرم شاره گفته اگر آب پر باشه لا یعنی بکنیم الان ما این پر از آبش کردیم تا پر کر شد اینجا منشه خسور چیه؟ چرا میگیم خسور؟ منشه خسور اینه که این آب چون آب ما میدونیم آب داره دو تو خود نمیشه. اگر آب همون آب نجس باشه اون دوبومی هم که رفته کرده همون صورت اولیه ما محبوظیم از اون برم شاره آماده گفته اگر اداب برقل ما قدر لا از چه ای؟ الانم کرده پس منشع خصور اینه اونجا منشع خصور که دیشت برده باشه اینجا منشع خصور است که از آمده آیا این تعبود شاره شامل این میشه یا شامل این نمیشه شامل اونجایست که مثل آب نجست بوده میشه یا نمیشه اون مثال دیگری که ارز کدم من همون بازون ارز میکنم که اصلا سر اخلاف از زمان صحابه بعدم همون فصل خانمی که هیز میده یه که عنال محیز قول هو و ازم این هو و بیشتر میگه شایده که مراد از محیز خود خونه چون محیز ممکنه حالت باشه من کراه نرز کدم برد و منی به اتفاق فوقای ما و اتفاق فوقای سنت حالا منیش شده ارسان شد. است. اگر گفت کی بول کرد وضو گرفت نماز خون پنج دقیقه بعدم بول کرد وضو گرفت نماز خون 5 نمیگن این وضوها و نمازها باطله درست همین جرس. اما در باب اینطور این طور نیست حالته الان خون دید حالزه ممکن 2 سال خون نبینه باز خون این حالزه این باعث باطل نماز نمازها باطله این فرقی داره هم مثل بوله حتی اگر شخص مختل تو فردی یعنی داره نفس از بیرون نصف در مجرا که از نماز کن در دقیقه دیگه نصف بیرون دیگه بیمان اون نماز درسته چون بناش در باب جنابت خروج منیه نه وجود منی در مجرام اگر منی در مجرام باشه هر پنج دقیقه در دقیقه بیست دقیقه یک باری نداشت خارجه هموندار که خارج میشه جنوب میشه قصد بکنه نماز با نماز, نماز درسته باز خاش حالت نیست جنابت حالت نیست بول حالت نیست تمام حید به اصطلاح خالص خالص این اون از فعتذ به نسار المهیت حالا اگه مهیت به معنای اسم مکان زمان گرفتیم زمان حید خود خون در اینجا اختلاف شده که آیا خونه یا زمان خب این خانم الان پس این حرمت واقعی داشت مادام خون موجود بود بعد از فاس شدن آیا حرمت واقعی داره یا نداره منشاء چه شد اونجا منشاء چی بود اون زیق ادراکی یعنی الان خون نداره مهیز نیست حیز نیست، خون نداره آیا اون حکم حد یا نه؟ اسألو نکن فعت از الان نسا همون هست یا نه؟ منشه در اونجا چیه؟ منشه در اونجا اینه منشه قصور منشه قصور رو در اینجا هرس کردم منشه قصور در اونجا آیا اون حکم که موجود اعتضال بود رفت روی ذات زن با وجود خون؟ اگر روی ذات زن با وجود خون خون الان نیست، پس حکم برداشته شد اگر منشأش این باشه که حکم رد روی ذات زن وجود خون مهم نیست وجود خون علت حدوث حکمه لازم نیست علت بقا باشه یا این شئره فخول از حیثیات تعلیمیه نه از حیثیات تقییدیه این در حقیقت اون نقطه فمنی این شد فهم ارکیشون این شد که آیا اون حرمت وقت رفت رفت روی ذات زن لکه این ذات زن اگر خونه حیزه آمد این حرمت وقتی رو میانه تا اختصاص اون که خطیق باشو برداشته بشه این مال ذات در اینجا حیثیت میشه تقریبیه یا نه رفت روی ذات زن با حیثیت وجود خون اینجا حیثیت میشه تقریبیه لذا مختیف همین این میشه که آیا حیثیت تقییدی یا حیثیت تقییدی است اگر حیثیت و تقییدی گرفتیم یعنی زن با وجود خون یه رو ها اگر حیثیت تقییدی گرفتیم یعنی ذات زن یه رو به علت و وجود خون این میاد منشأ قرمت میشه اما قرمت روی ذات زن برسی هست نه زن با خون منشه ای این که استثاب جاری می شانه اصول ادراکی روچن شد یک ازده می, می در اینجا ظاهر آیه فرس از الان فل محیز یعنی زاست زن با وجود خون ازده می نه وقتی که آمد فرس از الان یعنی اون محیز علت برای عروض اعتضاله که موضوع متعلق نساء فاعتزلوا النساء المحیبه این حیثیت حیثیت بدانید فرق نمی کنه دقیق کنید نکته اساسی در باب استثناء یعنی منشأ اینکه این زن در باب احکام مثلا قصور پیدا میشه منشأ خصور در موضوع عاطفی شایزه نور این ادراک دوم شما خصور داره شما میگید خب شاد زید مرد در احکام چطور؟ شاد حکم نصد شد نه؟ ولی زا اگر دفت کرده باشید در شباهاتو حکمیه میگن اختلاف در اتفاق الا شبهه بلا مثلا عدن نصد اتفاقیه تمام احکام ثابتون هستن اتفاقی زهدی به اتفاق نذاره اگر شک کردید خلان حکم نصد شده یا نه اصالت عدن نصد و اتفاق نصد اتفاقیه روشن شد مثلا؟ شک اونجا چیه؟ پس منشه شد و لذا در اونجا که شما زن داریم غم داریم بینید که یه حروم و بخیه ها اون زن شما چیه؟ اون ادراک اول شما با ادراک دوم یکیه فقط این ادراک دوم یک مقدار ابهام داره منشه ابهام آیا حیثیت تعلیلی یا تغییلی؟ این مال ازده ها حالا دیم قیام اون کسایی که میگفتن استثار جاری میشه حیثیت رو تغییر میخوندن تعلیم میخوندن من بخن زن با تعلیم اون کسایی که میگفتن استثار جاری میشه حیثیت رو استظهار میکنن که حیثیت تعلیمی است زاد زن محرم نیست، و نظر این تصرف بود اصلا سر به این که در استثار در شباز روخ میده تصرفی از این حالا به این تو قیاس یا هم همین تو بیش ظاهر دلیل می گفت که خن انم از خن قوال نیتر در وقت تعرف شراب انگوری حالا شراب بکرمایی شراب درینجی، از برین شراب برز کردن از نش... نشاتش از تیزرین شراب برز کردن دقیق می کنی می اگر ما باشیم و لسان دلیل لسان دلیل این است که عنوان شراب انگوری اما اینکه شما با هم بگید شراب نشاسته، شراب هم حرامه. باید بگید عنوان دقیق خمر می، شراب انگوری است، مسکر است. این هم در الغادر منشه منشأ الغادر اونجا این شد که آیا شراب انگوری به عنوان شراب انگوری حرامه یا شراب انگوری به عنوان مسکر حرامه؟ اگر با خواهیم به اصطلاح اصولی رو گیم آیا عنوان شراب انگوری از اناوین مشیر آیا موضوعیت داره یا مشیریت داره؟ معرفیت داره؟ اونجا یک دسته بود حیثیت تحلیلی است یا حیثیت تحلیلی اینجا نقطش عرض شد آیا این عنوان مشیر یا موضوعیت داره؟ اینی در لسانه در احصول عنوان خمد خمر موضوعیت داره یعنی شراب انگوری به نسته. یا مشیره معرفه مرعاته یعنی چی؟ مرعات هست کل موسیره خمر گفته لذا ما در اصول اضافه برای بحث استثاب هر دو مسئله را هم جدابانه بحث کردیم پیه مسئله استثاب اینجور گفتیم، اگر ضرران هم شد ببینیم که حیثیت تحلیلی باشه یا تعلیبی سؤالو ها اصل اولی چیه بنای اصولی این است در احکام عقلی حیثیتیا تحلیلی هستند در احکام شرعیه حیثیتیا تغلیلی هستند در احکام عقلی حیثیتیا تحلیلی هستند اما در احکام شرعیه حیثیتیا تغلیلی هستند اگر حیثیت تغلیلی شود دیگه احتساب جوری نمیشه چون میشه فعتده رو نساق فل محیزه نساق و محیز الان نساق بلا محیزه الان حیثیه پس لیون حب شما بزنید. این سر عدم جریان استثاق در شباهات حکمیه سرش اینه چون درارمه هم میشه بین حیثیت تقییلی و حیثیت تحلیلی اون آب که نجس بود چون کر نرود دیگه این آب نیست ببینید کر اگر نظرتون به ذات آب باشه هست آب با غصت کوریت عوض شد با غصت عدم و کوریت عوض شد روشن شد؟ اون زبایی هایی این مسئله رو برسون روشن کرده بید رو بید رو در قیادت هم اگر دوران هم شد که موضوعی که در مسان زیده احس شده به نحو موضوعیت یا مشیریت بنای اصول اینه که اصل اولی موضوعیت مشیریت داریم میخوان قیاسا هم حجت نیشه از این را باید, باید شد. یعنی اگر هرچی در رسانه دلیل آمد هم کردن او بر موضوع در طریقیت و معادیت و مشیریت احتیاج دلیل داره ظاهرش خود همون عنوان موضوعیت داره پس اگر در برامه شد در محبوض در رسانه دلیل ما موضوعیت و موشریه اصل اولی موضوعیه اگر درانه هم شد ببین این, این حیثیت تحریری باشه یا حیثیت تحریری باشه در احکام عقلی تعریری در احکام شرعی تحریری حالا ممکن است در احکام شرعی گاهی حیثیت تعریری و تحریری باشه اما غالبا این حیثیت ها تعریری هستند که اگر گفت سعده زنان مثل تحلیل این ها ها و و هم تحلیل قانونی روشون این هم تحلیل زناشویی سعده زنان فل المحیض آیا موضوع و متعلّق متعلق نسائه و نهیض علت بروز حکمه یا نه نساب با محیض با هم دیگه کاملاً دیگه برای شما روشن شد که بحث در استصحاب نه اینکه اماءه می‌دونن و از باب این دیگه به نظرم خیلی تحلیل و واضحه رو تحلیل دوم میگه درسته این دو تا ادراک در همه نیستن سلخشون فرق میکنه ایم. این مصدر که ایشون قرم و اون این که ادراک اولی ادراک انتباعی نفسه ادراک دومی نفس درستش کرده. ابداعی نفسه فرقشون به حسور و تمام نیست فرقشون به انتباع و ابداعه این شما هستی یا به اصطلاح فلسفی قبه مخیر متفکر این مال تصرفات قبه خیاله وقتی اگر ما اون اصطلاح فلسفی قبول بکنی اون وقت میشه ادراک بیروزی مال استمرک مال قبه خیال البته قبه خیالات بدون وصولی کندی در قبه زن بدون وصولی کندی وقتی شما نمیخوای اصطلاح فلسفی رو راه بدی دیگه اینو هم استفاده کن پس بنابراین ما میایم از راه قبه خیالات ادعا تصرف میکنیم ایجاد میکنیم همون صورت دیروز رو در ذهنمون ایجاد میکنیم این سوال اینه شما به ادرافات رو خود رو برگردیم پس یک نکته این که نقطه اساسی که آیا ما در اینجا ایجاد میکنیم یا این همون صورت دیروزه منشه ابهام هم این فاصله زمانیم آیا این فاصله زمانی کاری میکنه که دو ادراک یکی اصول و تمام داره یا دو ادراک دو تاست؟ نظرم الان اصولین شیعه دو ادراک دو تاست به اساسه من مستاد که اماره جهن اینه که آمدن گفتن استثاب از باب تحبوت قدیت مرادشون اینه این اصطلاح من به کار نمودن؟ اما مرادشون اونه اونایی که گفتن استثناب از باب زن حجت مرادشون اونه. آسه این تغییری که من روز کردم مثلا دوباره نواردوشو کردم در حقیقت یکی از این کارا اون خیلی برام الان واضح بدیهی شد دیگه که اصل مطلب چیه اختلاف در چیه این ادراک دیروز با روزو با خودتون برگردید به اعتراضاتتون تفسیری بکنید یک ادراسی کرد با یک صفتشون فرق کرده یا نه دو سریعه ادراک هم یه ادراک حالت که ادراک مستقیم انتباه از خارج یکی نه نفس شما از اون صورت درست میکنه این نفس شماست که ادراک میکنه و ادراک شما میتونم میگنید دیروز روزایید مثلا بوده امید مثلا مهرد میگیم باری افتما انشاءالله اگر خواستیم که مفتی در استساف کن شواهد رو ما نقامه کردیم الان تره بحث کردم شواهدش در بحث استصحاب که خودمون فردا این بحث رو با تکمیل می‌کونیم ان الله. علیه محمد و آل محمد